تفهیه 761 بانو گفت به نظر میآید بهتران بود تا از شما نمیخواستم آن عبارات را بخوانید. زیرا نمیدانستم که آن سبب ناراحتی شما خواهد شد اما نام من فتنه است که منای آن طوفان است و این است که انگام شدن من به من داده شده چون ستاره من می گوید هر کس من را ببیند دوچار حوادسی خواهد شد من یکی از سگولی های خلیفه ام. و در پس همه مرا میشناسند داستان من به این قرار است مرا دستن خورد سالی به قصر خلیفه بردند و در آنجا یافته ام و خلیفه بیست کنیزک ماهرو در اختیار من گذاشت و هدایا و جواهرات فراوان به من ارزانی کرد و برای آموزش من از همان سنین خورد سالی آموزگارانی را برگزیده بود و حال که بزرگ شده ام در تالار مجاور خوابگاه خلیفه در قصر زندگی می کنم. او به قتی تلاوت جواهر در اختیارم میگذارد که هیچ ای در جهان این همه ثروت در اختیار ندارد. در داخل قصر بیست خاجه حرم و گوش به فرمان من هستند. ولی ملک زبیده همسر خلیفه همواره نسبت به من احساس حسادت مینمود و من سعی کردم از دامهایی که او برای من گستران فرار کنم و جان سالم به دربرم گرچه چهار روندشید، همه گونه در اختیار زبیده هست ولی زبیده میخواهد مرا از میان بردارد. اگر شما به یاری من نیامده بودید، دیشب جان خود را از دست داده بودم. زبیده با دادن رشوه به یکی از ودیمه های من، او را مأمور می تا داروی بیهوشی در نوشابه من بریزد و من بعد از نوشیدن آن به خواب عمیقی فرو رفتم و بعد از آن تا لحظه که شما مرا نجات دادید، از خود بیخبر بودم. زبیده از نبودن خلیفه استفاده کرده زیرا مدتی است که خلیفه برای سرکوبی یکی از شاهان در رأس لشکریان خود برای مقابله با او از کشور خارج شده و به حضور خلیفه جرأت ازجاب چنین کاری را نمی کرد این از شما خواهش نکنم برای حفظ جان خودتان واقعی شب گذشته را پنها نگه دارید و هرگز فاش نسازید هنگامی که خلیفه از مسافرت مراجعت کند این پیشاورد را به نحوی به آگاهی او خواهم رساند و با حضور خلیفه در قصد زبیده هرگز جرأت این مول دشمنی را نخواهد داشت همین که سخنان سوگولی خلیفه به اینجا رسید قادم گفت ای با من خوشحالم که به شما اطمینان دهم شما در این خانه از هر جهت محفوظ هستید و بطبعه باشید که این راز را فاش ندیس و در مورد قلام هم که در اینجا هستند نگران نباشید زیرا آنها تصور خواهد کرد که من به وارز شما را خریدم معمولا مردان جوان کنیزان جوان خریداری میکنند به علاوه قلام هایی که در این خانه هستند هیچ خونه کنچکاوی شما ندارند اما من هرگز فراموش نخواهم کرد آنچرا که به سروران و اربابان تعلق دارد نوکران و زیردستان از آن ممنوعاند. اما در مورد شما قبل از ان که به من بگویید شما متعلق به خلیفه هستید شراره عشق شما خرمن وجودم را سوزانیده بود اینک من آنچنان قدرتی را ندارم که بر عشق تازه خود چیره شوم زیرا با تمام وجودم شما را دوست دارم دلم میخواهد که خلیفه دل دادهٔ قدرتمند و توانایی شما با بازگشت دوباره شما به قصر انتقام شما را از زبیده بگیرد و در عین حال شما هم قانم را فراموش نخونید و بدانید گرچه قانم از حیث قدرت در برابر خریفه ناچیز است ولی عشق آتشینی در دل دارد و به خود دلخوشی می دهد که وجود خلیفه سبب فراموشی شما نسبت به من نخواهد شد و اگر عشق میار دلبستگی باشد عشق من به شما از عشق خلیفه نیرومندتر است و هر کجای جهان که باشم شراره های عشق شما مرا خواهد سوزانید سخنان قانم فتر را منقلب کرد و میترسید که ادامه این سخنان او را بیش از حد به قانم علاقه سازد و شاید چنین امری به صلاح نباشد در حالی که سعی می کرد خود را نسبت به قانم مخفی نگه دارد به سخن نرامد و گفت ادامه این سخنان سبب ناراحتی است بهتر است درباره مطالب دیگر صحبت کنیم من زندگی خود را مدیون فداخوری شما می دانم. اگر شما به یاری من بودید. اینک در این جهان وجود نمی داشتم بعد از خوردن شام قانم صفره را برچید و به غلامان داد و به فتنه گفت اینک وقت استراحت فرا و اگر فرمایشاتی دارید فوراً به من بگویید تا انجام دهم قانم برای آسایش بیشتر فتنه دو کنیز زرخرید برای او تهیه کرده و بسترین نوم و ملافه های تازه از مرکوب ترین پارچه ها برای او خریده بود و می کشید همه گونه موجبات آسایش را برای او فراهم آورد فتنه از مهمان نوازی و مهمانی قانم تشکر کرد و میدانست که او با جان و دل در فکر تمنین آسایش اوست و به قانم گفت خداوند به من امکان دهد تا فداخاری های تو را جبران کنم قانم کنیزخان مخصوص فتنه را در اتاق مجاور جای داد و خودش وارد اتاقی که برای فتنه محیا کرده بود شد و به خاطر احترام بیشتر، قدری دورتر از او روی کتی نشست و دوباره درباره عشق آسمانی خود با فتنه آغاز به سخن کرد و از موانع و مشکلاتی که در این راه وجود دارند و مایه یه نومیدی او می شوند صحبت کرد و گفت فکر نمی کنم سخنان من در قلب کسی که مهر بزرگترین سلاتین در آن جایی دارد کمترین نفوزی کند اگر می توانستم خود را قانع کنم که شما به این عشق سوزان من با بیتفاوتی نمی نگرید. باز هم بسی موجب خشنودی من میشد. شد در این هنگام گفت سرور من در همین لحظه قانون کلمات او را قطع کرد و گفت این بار دوم است که مرا با این عنوان خطاب می کنید. بار اول به خاطر برود خدمت به اتاق نتوانستم تذکر بدهم ولی میخواستم بگویم که من شایستگی چنین عنوانی نیستم و من گلام حلقه به گوش شما هستم و همیشه هم غلام فرمان بردار شما خواهم بود از شما تقاضا دارم برا قلاب خود بدانید. فرس پاسخ داد من در برابر کسی که مرا از مرزه بخشیده باید با مهربانی و حق شناسی صحبت کنم. اگر جز این رفتار کنم ناسپاسی کرده ام. اجازه دهید با همون شیوهی که وجدان من به من حکم می کند با شما سخن بگویم. من خدمت بزرگی را که به من کرده اید فراموش نخواهم کرد. و اگر احساسات بیشتری از خود نسبت به شما نشان نمیدهم و سکوط میکنم هم دلیلش را میدانید قانم از سخنان فتنه خوشحال بود و اشک شادی میریخت و از گفتار او راضی بود و میخواست به او بفهماند او هم میداند چرا فتنه خود را مدیون خلیفه میداند و اخلاقا به او تعهد دارد با زبان ساده میخواست بگوید آنچه تعلق به بزرگان دارد زیر دستان را نشاید شب فرا رسیده بود، قانم از اتاق بیرون رفت و چراغ و قدری میوه به درون اتاق آورد در وقتات رسم است که هنگام نهار ازای اصلی خورده میشود و شام را با میوه و جامی شراب اکتفا میکنند کنند قانم و فتنه بر سر صفر نشستند و جام‌های شراب را به سلامتی یکدیگر نوشیدند ولس به شراب به حدی بود که ناخداغا به نوشیدن آن ادامه دادند آنها قرار گذاشتند هر کدام ترانهای بخوانند نخست قانم اشعاری آشقانه بلبداه سرود و رغم سرداد و بعد از او هم فتنهٔ اشعار زیبایی دربارهٔ سرگذشت خود سرود و با آوازی خوش آن را ارائه داد اما در تمام اوقات فتنه وفاداری خویش را نسبت به خلیفه حفظ کرد با وجودی که قادر احساس میکرد فتنه پاسخ رد به عشق او و گفتار و رفتار موافقی نشان میدهد با این وجود پیمان خیش با خلیفه وفادار است آنها تا پاسی از شب گذشته منوشیدن شیران خوردن مشغول بودند تا آنکه بعد از نیمه های شب قانی خدا کرد و به اتاق خود بازگشت و فکر را در خوابش طرفان گذاشت و زک هم در انتظار فرمان او در اتاق آماده خدمت شدند چند روز بدین منوال سپری شد و قانم به از موارد استستایی برای کارهای واجب از خانه بیرون نمیرفت و همه اوقات در کنار كنار فتنه سر میبرد و تازه اگر هم از خانه خارج میشد همش در فکر فتنه بود فتنه هم از عشق او خوشنود بود و صریحا اعتراف میکرد که عشق او نسبت به قانم به هیچ وقت کمتر از عشق قانم نسبت به او نیست با وجود این همه دلدادگی که دو دلداده نسبت به یکدیگر نشان میدادند حریم عشقی خود را به خاطر حس احترام و وفاداری نسبت به خلیفه رایت می کردند و همین اهم سبب می شد تا شله های هر دو بیشتر زباده کشد فکره که می دید قانم چگونه او را از کام مرگ بیرون کشیده و زندگی ای به او بخشیده ما نرمی و محبانی رفتار می و سخنان محبت آمیز که بوی عشق می داد به قانن می گفت حال قانن و فکره را به حال خود می بزاریم. و به سراغ زبیده که با انجام نقشه شیطانی خود هنوز احساس ترس در قصر سلطان میکرد برویم همین که سقلاب زرخرید مأموریت خود را انجام دادند و فرمان بانوی خود زبیده را کرکرانه اطاعت کردند بدون که بدانند در داخل آن صندوق بوده و یا در آگاه شدن از آن کنجقافی نشان دهند به قصر مراجعه کردند و گزارش کار خود را به زبیده تسلیم داشتند زبیدی با وجودی که به خواسته خود رسیده بود، مع ترس مرموزی او را رنج می‌داد و آسایش را از او دور ساخته بود. اذهان فکر ناراحت کننده در ذهن او میگذشت. فکر می‌کرد ناپدید شدن سگولی خلیفه را چگونه توجیه کنند. آن هم آنچنان صقری که بیش از هر سگولی دیگر مورد علاقه سلطان بوده است. با خود می‌گفت در پاسخ پرسش خلیفه که بر سر حسین آمده است، من چه بگویم؟ سرانجام گیج و بادخوت بود، و توانست تدبیری بیاندیشد که چاره ساز باشد. اتفاقا بانوی سالخرده‌ای که او را بزرگ کرده بود، در قصر با او زندگی می‌کرد و همیشه در برابر مشکلات از او یاری می‌جوزد. این بار هم او را احضار کرد و مشکل خود را با او در میان گذاشت. بانوی سالخورده گفت: از این پس در این بار ساخنی نگو. باید خلیفه را فرید دهید و برای این منظور لازم است دستور دهید. از چوب مجسمه آدمی را بتراشند و سپس با پارچه‌های کره آن را بپوشانند و به صورت انسانی پیچیده شده در کفن درآورند و در تابوتی جای دهند. آنگاه باب در گوشه‌ای از قصر بنا کنند و آن تابوت را در آن کنند و بعد سنگ مرمری به شکل گنبد به نشانه یادبود آن مرحوم تهیه کنند و در آرامگاه او نصب نمایید و دیوارهای آرامگاه را با پارچه‌های سیاه بپوشانید. و شمدان های بزرگ در آنجا قرار دهند و شعق گچی در آن بگذارند و بیافروزند. افروزند فراموش نکنید که وقتی خلیفه از مسافرت مراجعت کند مراسم سوزباری برپا کنید و تمام ندیمه های فتنه و سایر بانوان درباری و کلیه خاجه های سرای سلطان در مراسم عزاداری شرکت جویند و وقتی سلطان پرسش کند این مراسم برای چیست؟ پاسخ بده به منظور بزرگ داشت و احترام به حضرت سلطان است که به فتنه علاق من بوده اید و متاسفانه فتنه بر اثر مرگ لایه‌هانی به جود زندگی گفته است بعد هم پیشنهاد کن که سلطان آرامگاه باشکوهی در همان محل دفن او برقرار کند و به سلطان بگو وظیفه خود را در نبودن سلطان ایفا کردم و اداماتی را که سلطان با حضور خودشان انجام میدادند من نوثی گرفتم پیرزن ادامه داد: سلطان علاقه بسیار به دارد، حتما بر گور او عشق خواهد ریخت و ممکن است در صحت مرگ او تردید نماید و بخواهد بجسد جوی فتره بپردازد. او را از این فکر منصرف کنید و بر اثر تردید و سوء زن به شما ممکن است قبل فتره را بشکافد و تابوت او را بیرون آورد. اما همین که را که در کفن پیچیده شده است، و ظاهر آن نشان می‌دهد که مرده‌ای را اند ببیند،" به همین اکتفا میکند و بعد هم از خدمات شما قدردانی خواهد کرد اما برای تراشیدن مجسمه از چوب برخودم در جاری را در شرط می شناسم که بدون آنکه بداند مجسمه را برای چه منظوری می خواهم مجسمه چوبی را خواهد تراشید و بعد در اختیارتان می گذارم اما در مورد ای که روز گذشته به فتنه نوشابه داده است باید به او یاد دهی که پاسخ دهد وقتی به اتاق بانوی خود رفته است او را در بفتر خودش مرده یافته است و ندیمه یاد شده با شیون گریه شما را از این پیش آمد آگاه کرده و شما هم به خاجه باشی دستور داده اید محلی را در قصد حفظ کند و جنازه را در آن دفن نماید. زمیدی با شرینر سخنان بانوی سال انگشتر الماسی را از جعبی جواهرات خیش بیرون آورد و به او بخشید و گفت مادر عزیز از راهنمایی شما یک دنیا گذارم. همین تدبیر را به کار میبرم. شما فکر مرا راحت کردید. لطفا ترتیب تقیه مجسمه چوبی را بدهید و ترتیب بقیه کارها را خود خواهم داد. مجسمه چوبی را سریعاً تهیه و به اتاق خواب فتنه آوردند و در آنجا آن را با پارچه پوشاندند و به صورت جنازه در تابوت گذاشتند. آنگاه خاجه باشی که فوت فتنه را جدی میپنداشت به دستور زبیده تابوت را به محلی که تعیین شده بود انتقال داد و با تشریفات مذهبی فتنه را به خاک سپردند و همه به خصوص ندیمهای که نوشابه را در دسترس فتنه گذاشته بود سوگواری و شیوان و زاری را آغاز کردند در همان هم روز معمار هنرمندی که قصر سلطان و سایر خانه های سلطان را بنا کرده بود به دستور زبیده در مدت بسیار کوتاهی آرامگاه باشکوهی برای فتنه برپا ساخت و در مدت کوتاهی خبر در گذشت فتنه در سراسر سر شهر تخش کردید قانم آخرین کسی بود که از خبر فوت فتنه آگاهی یافت زیرا بنادت از خانه بیرون میرفت به شنیدن این خبر نزد فتنه برگشت و ماجران را بیان کرد و گفت حالا که همه مردم تصفار و مرگ شما دارند بیایید که از اینجا به گوشه دیگری از جهان برویم تا بقیه عمر را بر قلب من فرمان کنی ما میتوانیم با استفاده از این خبر فوت دروقین زندگی پرسعادتی را در کنار هم به وجود آوریم شما که فقط برای خوشبخت کردن سلطان آفریده نشدید اگر فرض شود که شما بتوانید خلیفه خریفه را به حال خود بگذارید و بقیه عمر را با هم زندگی کنیم چه آینده دلپذیر را در پیش خواهیم داشت؟ اما افسوس که آنچه برای بزرگان پیش شده است زیر دستان نباید از آن دست پیدا کنند فتنه از سخنان قانم لذت می بود ولی تمایلات خود را مهار میکرد و می ما باید همچنان با احتیاط رفتار کنیم تا خلیفه از سفر برگردد و به نحو حقیقت داستان را به آگاهی او برسانیم سه ماه بعد خلیفه بعد از کردن مخالفین با پیروزی به بغداد بازگشت. و با اشتیاق فراوان از فتنه سراغ گرفت ولی وقتی دید همه ساکنین قصر او در حال سوزواری هستند حیرت کرد و به تالار زبیده رفت تا از علت آن آگاه شود وقتی خلیفه از زبان زبیده خبر مرگ ناگهانی فتر را شنید فریادی کشید و بیهوش بر زمین افتاد ولی جعفر نخست وزیر او را در آغوش خود جای داد بعد از آنکه خلیفه به هوش آمد از محل دفن او جویا شد و به آنجا رفت وقتی آرامگاه با شبوه او را در گوشه از قرس مشاهده کرد، در فکر فرو رفت. زیرا با حسادتی که از زبیده نسبت به فتن سراب داشت، به سختی باور کنند فتن واقعا مرده است. و معتقد بود فتن نمرده است، بلکه زبیده در قیمت خلیفه بلایی به سر سبولی سلطان آورده است. خلیفه برای پیموردن به واقعیت داد قبر را باز کنند، و جلازه را بیرون آورند به همین ترتیب هم رفتار شد و پیکر ظاهرا بیجان فتنه را که در کفن پوشانیده شده بود بیرون آوردند خلیفه بنا به اعتقادات دینی خود بیش از این به خود اجازه کامش نداد و دستور برگشت جنازه را به داخل تابوت و پوشاندن مقبره را صادر کرد او در مراسم سوگواری شرکت جسد و پیشوایان دینی و روحانیان را دعوت کرد تا قرآن و دعاهای مخصوص بخوانند برای شادی روان فتنه یک ماه تمام عزاداری شد خلیفه و جعفر نخست وزیر و کلیه بلند بلندپایگان کشوری و لشگری همه در مراسم حضور به هم رساندند در پایان آخرین روز سورگواری هارون و رشید خسته و کوفته به خوابگاه رفت و بین دوتن از بانوان به استراحت پرداخت یکی از آن دو که روشنایی روز میشد می مشغول قلاب دوزی روی پارچه بود و به تصور اینکه خلیفه به خواب فرو رفته است به دیگری که ستاره صبح نامیده میشد گفت وقتی خلیفه از خواب بیدار شود به او مژده خواهد داد که فطر زنده است و حتما خلیفه از این خبر بزرگ بسیار خوشنود خواهد شد ستاره صبح از این مژده هیجان آمد و بسیار خوشحال شد و فریادی از شادی برآورد که خلیفه را بیدار کرد به محض بیدار شدن خلیفه روشنای روز تعریف کرد که نامه به خط فتنه به دست او رسیده که سرگذشت غمانگیز خود را آن شرح داده و گفته آن را تقدیم حضور سلطان کنم. خلیفه نامه را گرفت و با بیصبری هرچه بیشتر آن را خواند فتنه ضمن شرح ماجرا قدری در تاریف بازرگان جوان که سبب نجات او از مرگ شده بود زیادهروی کرده بود و همین امر هم سبب برانگیختن حسادت سلطان و بدبینی او به فتنه قانون گردید و با خود گفت بد وقتی تو این ایام را با این جوان گستاخ گذراننده ای و تازه حالا بعد از گذشتن یک ماه از بازگشت من به فکر افتادی تا برایم نامه بنویسی و همه ش از این جوان تعریف کنی ای آدم نمک نشناس این مادر را من به خاطر تو و عشق به تو با اندوه حوقص بسیار میگذردم. و تو مشغول خیانت به من بوده ای اینکس خیانت تو خیانت پیشه و کیفر آن جوان گستاخ را خواهد داد. این را گفت و به بارگاه خود رفت همه ی بزرگان درباریان و جعفر نخست وزیر وارد بارگاه شدند و در حضور خلیفه مسلمین به حالت سجده در برابر تخت او پیشانی خود را به خاک مانیدند خلیفه با صدای بسیار آمرانهی گفت جعفر، فرمان می دهم که همین لحظه همراه چهار تن از نگهبانان سلطنتی حرکت کن و بازرگان جوانی را که قانم فرزند ابو ایوب نافدارد دستگیر و خانه او را با خاک یکسان کن و خود این جوان را به زنجیر کشیده و نزد من بیاور. ضمن فتره کنزک مخصوص را هم که مدت چهار ماه تمام با این جوان گذرانده به حضور من بیاور تا گوشمانی به سزایی به آنها بدهم که عبرت سایرین شود وزیر یکی از افتران گارجا برای جستجوی خانه معمور کرد بعد از مدتی افسر یاد شده خبر آورد که مدتی قانم در مرکز اجتماع بازرگانان دیده نشود و اگر در طول مدت در خانه بوده باشد به چه پیش آمده سبب پایبندی قانم شده که او پای از خانه بیرون نگذاشته است. بانوی بیوهی که خانه خود را به بازرگان جوان اجاره داده بود نشانی محل خانه خود را در اختیار مامورین خلیفه گذاشت. با دریافت بشاری خانه افسر فرمانده با سپاهیان خلیفه به سراغ حاکم شهر رفتند و فرمان خلیفه را به او ابلاغ کردند و او هم گروهی از کارگران و بنایان و معماران را با ابزار خانه خراب کن در اختیار افسر فرمانده قرار داد و آنها همگی خانه قانم را محاصره کردند تا در ای که میخواهد بیرون بیاید او را دستگیر کنند در این هنگام قانم و فتنه تازه از سر شام برخاسته بودند که یکی از دو كنیزان جعفر نخستوزیر و سربازان را از بالای پنجره اتاق دیده بود و با شتاب موضوع را به آگاهی آنها رسانید فتره آنان دریافت که نامهاش به دست خلیفه رسیده ولی فکر نمیکرد واکنش خلیفه در مقابل آن چنین باشد و نمیدانست چند وقت از خلیفه از سفر خود به پایتخت بازگشته است و حتی از برانگیخته شدن حسادت خلیفه نرسل زیاد روی او در تعریف بازرگان جوال کاملا بی خبر بود فتنه هیچ دیگرانی برای خودش نداشت چون متوقع بود در صورتی که خلیفه فرصت سخنگفتن به او دهد میتواند بیگناهی خود را صادر کند ولی ترس او مقاطر قانن بود که سلطان نخست وزیر خود و گروهی از سپاهی را برای دستگیری او فرستاده بود و زواهر امنشان نشان میداد خلیفه در فکر مجازات شدیدی برای بازرگان جوان است فتنه نگاهی به قانم کرد و گفت کار برای تو هر دو ساخته است زیرا یقین داشت سلطان در آتش خش و حسادت می سوزد و تعریف او را از قانم به معنای دلبستگی فتنه نسبت به قانم تلقی کرده است قانم فورا از پنجره اتاق بیرون را نگاه کرد و بر خود لرزید و گفت راست می حضور نخست وزیر و سربازار شبشید به دست به اتفاق حاکم شهر دلیل بر برنابود کردن باز قانم دیگر نمی توانست. سخنی بگوید در همین لحظه فصله به او گفت چتاب کن ورخت یکی از قلامان را بپوش و صورت و دستهای خود را با دوده سیاه کن و بشغابها را در سینی بگذار آنگاه سینی را روی سرت بگیر و از خانه خارج شو آنها به تصور آن که تو کارگر چلو خانه هستی مانع رفتن تو نخواهند شد و تو می توانی همین که از آنها دور شدی فرار کنی قانم گفت تو همش به فکر من هستی برای رهای خودت چه نقشی داری فسنه گفت نگران من نباش عجله کن چون من میدانم هنگام خش تصمیمات سلطان وحشت است. ولی بعد از مدتی که خشم او فرو نشند تصمیمات عاقلانه میگیرد. قانم به همان ترتیب رفتار کرد و آماده رفتن شد و هر دو دلداده یکدیگر را در آغوش گرفتند و با اندوه بسیار خدا نگهدار گفتند قانم از خانه بیرون آمد و سینی بر سر با لباس مبدل از جلوی همه سربازان و نخست وزیر عبور کرد نخستین کسی که راه را برای عبور او گشود نخست وزیر بود که سربازان هم به پیروی از او به او راه دادند قانم وقتی از منطقه خطر دور شد با شتاب بسیار خود را به یکی از دروازه های شهر سانید و راه فرار در پیش گرفت نخوصفزیر به خانه قانم وارد شد و به اتاق فتنه رفت پسنم بحث دیدن نخوصفزیر خود را از صورت به روی زمین انداخت و در حالی که صورتش به روی زمین و آماده اجرای حکم مرگ بود به نخوصفزیر گفت حکم سلطان را اجرا کنید نخوصفزیر گفت بالوی من این چه فرمایشی است؟ نابود با دسته که بخواهد به شما بیحرمتی کند مموریت من منان است که از شما خواهش کنم به اتفاق جوانی که در این خانه زندگی می نزد خلیفه برویم فکر گفت من حاضرم اما جوانی را که نام بردی کسی است که مرا را از مرد بخشیده و یک ماه هست که برای کارهای شخصی خودش به دمشق رفته و اساسیش را به من سپرده است و باید شرط امانت را به آورم جعفر جفر وزیر گفت البته با مال امانتی را محفوظ نگه داشت فوراً به چندین باربر دستور داد که سندوهای موجود را به قشب ببرند و به رئیس نگهبانان قشب بسپارند تا در محل امنی جای دهند همین که باربرها سندوها را هم کردند وزیر با حاکم شهر زیر صحبت کرد و خواست که خانه قانم را ویران سازد ولی قبلا خانه را برای یافتن قالیم جستجو کردند آنگاه نخست وزیر به اتفاق فکر حرکت کردند و دو که او هم بدون آنکه دیده شوند خود را داخلی جمعیت کردند وقتی نوص وزیر وارد قصد شد خلیفه از او پرسید: لستورات مرا انجام دادید نخص وزیر گفت آری فقط قانم را نتوانستیم به دست آوری و از قرار معلوم به دمشت فرار کرده است خلیفه به رئیس نگهبانان دستور داد فتن را در سیاهچار قصد زندانی کنند. رئیس نگهبانان که می دانست وظیفهش در این گونه موارد چیست فورا فتن را به سوی سیافچار راهنمایی کرد و او هم بدونه چون و چرا به دنبال سرنوشت خود به زندان رفت. خلیفه که هنوز در آتش خشم خیش می سوخت به شرح زیر به سلطان کشور سوریه اموزادهی خود و خراجگزار خلیفه که در شهر دمشق زندگی میکرد نوشت پسر امو بدن که بازرگانی از اهالی دمشق به نام قانم فرزند ابو ایوب بهترین سغولی کنیزان مرا که فسن نامیدین میشود اقفار کرده و او را رو بوده و خودش هم فرار کرده و به دمشق آمده دستون میدهم هم که به محض خواندن نامه دنبال قانم بروند و او را دستگیر کنند و در قفص آهنین کنید و سه روز هر روز پنجاه ضرب تازیانه به او بزنید آنگاه او را در خیابانهای شهر گردش دهید و جار بزنید این کمترین مجازات برای کسی است که موجبات نخوشدودی خریفه مسلمین را فراهم سازد و یکی از کنیزان او را از راه به در برد سپس قانم را نزد من اعزام دارید خانه قانم را تاراش کنید و بعد آن را با خاک یکسان سازید تمام اموال و اساسیه و لوازم او را از خانه اش بیرون آورید. و به بیابان بریزید و اگر قانم، مادر، خواهر، همسر و دخترانی دارد همه آنها را لخص مادر کنید و آنگاه آنها را برای مدت سه روز به همان حالت اوریان در معرض تماشای مردم در کوچه ها و خیابان ها قرار دهید زمنن هر کس بخواهد به آنها پناه دهد ده و کمکی بکند محکوم به مرگ خواهد بود انتظار دارم در اجرای این فرمان کمترین سستی به خرج ندهی امزا حارون و رشید خلیفه دستور داد که این نامه توسط کبوتر توند پرواز نامه بر برای سلطان سوریه ارسال شود و پاسخ آن را فورا به آگاهی خلیفه برسانند کبوتر زفه بیست و تار سر به دمشق رسید و نامه را از پای کبوتر باز کردند و به سلطان دادند. همین که سلطان چشمش به خط خلیفه حارون و رشید افتاد آن را شناخت. نامه را بوسید و بر چشمان خود گذاشت و آن را گشود و از مفاد آن آگاه شد. بلافاصله از تخت به زیر آمد سوار اسب شد و از بلندپایگان پایگان دربار خود و افسران عالی رتبه و رئیس انتظامات شهر و همچنین نگهبانان قصد خواست که همراه او به سوی خانه قانم حرکت کنند. از وقتی که قانم از دمشت به بغداد سفر کرده بود مادرش از او خبری نداشت ولی بازرگانان همسفر قانم از ازاد بازگشته بودند و به مادر قانم گفته بودند قانم را صحیح و سالم در بغداد دیدند اما چون نامه برای مادرش نفرستاده بود مادر بیچاره فکر میکرد پسرش حتما مرده است به این جهت شروع به سوگواری کرده بود و حتی ساخته یادبودی یاد بودی در وسط حیات خانه خود به شکل گمدی بلاده و دیوارهای آن را با پارچه سیاه پوشانید و هر روز.